بسم الله الرحمن الرحیم منت خدای را از عزبجل که تاعتش موجب قربت است و به درش مزید نعمت هر نفسی که فرو می روید ممد حیات است و چون بر مفره زاد پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که برآید، که از اهده شکرش به در آید اعملو آر داوودش شکرن و قلیل من عبادیش شکور بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدایا ورد. ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جایا ورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خان نعمت بی همه جا کشیده، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف خوارداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه‌ی ابربهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرماگی به تربیتش نخل با سرق گشته ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری همه از بهره تو سرگشته و بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت آدمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلزم شفیعون متاعون نبیون کریم قسیمون جسیمون نسیمون وسیم چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بهران را که باشد نو کشتیبان بان الالا به کمالهی کشفت دوجا؟ به جمالهی، حسنت جمیع و خسالهی، سلو علیه و آلهی. هرگاه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست اناوت به امید اجابت، به درگاه حق جل و علا بردارد، عیزت تعالی در وی نظر نکند بازش بخاند باز اعراز کند دیگر به تذرع و زاری بخاند حق سبحانه و تعالی فرماید یا ملائکتی قد استهیت من عبدی و لیسلهو قیری فقط له دعوتش اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همین شرم دارم. کرم بین لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرم سا. آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتیک و باسفان حلیه جمالش به تهیر منصوب که ما عرفناک حق معرفتیک گر کسی وصف او من پرسد بیدر از بینشان چگوید باز آشغان کشتگان معشوغند بر نیاید ز کشتگان آواز یکی از صاحب سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بهر مکاشفات مستقرق شده آنگه که از این معاملت باز آمد یکی از یاران به طریق انبساط گفت از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را چون برسیدم بوگ گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت ای مرغ سهر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد، خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچه گفتند و شنیدیم و خوندیم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید. امر، ما همچنان در اول وصف تو مندیم، ذکر جمیل سعدی که در افواه عوا افتاده است و سیت سخنش که در بسیت زمین رفته و قصب الجیب حدیثش که همچون شکر میخورند. و رقع منشآتش که چون کاغذ زر میبرند بر کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد بلکه خداوند جهان و قطب دایره زمان و قایم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان شاهنشاه معظم، اطابک اعظم، مزفر دنیا و دین، ابو بکر ابن سعد ابن زنگی، زل الله تعالی فی عرضه، رب برز و ارضی به عین انایت نظر کرده است، و تحسین بلیغ فرموده. و ارادت صادق نمونده لا جرم کافه از خواص و عوام به محبت او گراییدند که انناس و الادین مروکم زنگه که تو را بر من مسکین نظر است آثارم از تاب مشهور تر گر خود همه عبها بدین بند در است هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا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 المسلمین به طول حیاتهی و زائف و جمیل حسناتهی و رفع درجت و بلاتهی و دمر علا اعدائهی و شناتهی به ما طولی فلقرآن من آیاتی، اللهم آمن بلده و بلده لقد لغت سعد دنیا بهی دامسادهو و ایده المولى به النصر، کازل کتنش دیناتون و ایرخها. و حسن و نباطل من کرم البازر. ایزد تعالی و تقدس خبته پاک شیعاز را به حیبت حاکمان عادل و حمت عالمان عامل تا زمان قیامت در امان سلامت نگه اقلیم پارس را قم از آسیب در نیست تا بر سرش بود شد تویی سایه خدا امروز کس نشان ندهد در بسیط خاک مانند آستان درد مأمن رضا. بر توست پاس خاطر بیچارگان و شکر بر ما و بر خدا جهان آفرین جزا. یارب زباد فتنه نگه دار خاک پاس چندان که خاک را بود و باد را بقا یک شب. تعمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم و سنگ سراغچه دل به الماس آب دیده می و این بیتها مناسب حال خود میگفتم هر دم از عمر می نفسی. چون نگه میکنی کنی، نماند بسی. ای که پنجاه رفت و درخوابی، مگر این پنج روزه دریابی خجلان کس که رفت و کار نساخت، کوس رهلت زدند و بار نساخت، خواب نوشین بامداد رهیل باز دارد پیاده راز سبیل. هر که آمد امارتی نون ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. باندگر پخت همچنان حوثی، بین امارت، به سر کسی یار ناپایدار دوست مدار دوستی را نشاید این قدار قد نیک و بد چون همی به باید مرد خونکان کس که گوی نیکی برد برگ ایشی به گور خیش فرست کس نیارد پس تو پیش فرست عمر برفست و آفتاب تموز اندکی بند و قره هنوز ای تویی دست رفته در بازار ترسمت پر نیاوری دستار هر که مزروع خود بخورد بخید وقت خرمنج خوشه باید چید بعد از تعمل این معنی مسلحت آن دیدم که در نشیمن عذرت نشینم و دامن صحبت فراخود چینم و دفتر از های پریشان بشوگم و من بعد پریشان نگوگم. زبان بریده به کنجی نشسته سمن به از کسی که نباشد زبانشان در حکم تا یکی از دوستان که در کجا و انیس من بودی و در حجره جلیس به رسم قدیم از در درآمد چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد نگرفتم رنجیده نگه کرد و گفت کنونت که امکان گفتار هست بگو یه برادر به لطف و خوشی که فردا چو پیک اجن در رسد به حکم ضرورت زبان درکشی. کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سرخیش گیر و راه مجانبت پیش گفتا به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم بر ندارم مگرانگه که سخن گفته شود بر عادت معلوف و طریق معروف که آزردن دوستان جهل است. و کفارت یمین سعد و خلاف راه سباب است و نقض راه علول الباب زلفقار علی در نیام و زبان سعدی در کا زبان در دهان ای خرد مند. چیست کلید در گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیل ور اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است به وقت مصرحتان به که در سخن کوشی دو چیز تیره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، فر جمله زبان از مکالمه او درکشیدن قوت نداشتم و روی از محادثه او گردانیدن مروت ندانستم که یار موافق بود و ارادت ساده. که یار موافق بود و ارادت صادق. چو جنگ آوری با کسی برستیز که از بی گزیرت بود یا گریز. به حکم ضرورت سخن گفتی و تفرج کنان بیرون رفتیم. در فصل ربیع. که سولت بردارمیده بود و عوان دولت ورد رسیده. پیراهن برگ بر درختان چون جامعه اید نیک بختان. اول اردی به ماه جلالی بلبل گوگنده بر منابر قزبان بر گل سرخ از نمو افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قزبان شب را به بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد، موضعی خوش و خرم و درختان درهم. گفتی که خردگ مینا بر خاکش ریخته و اقد سریا از تارکش آویخته. روزتون ما و نهرها سلسال دوحتون سجع و تیرها موزون، آن پر از لاله های رنگا رنگ، وین، پر از میبه گوناگون با در ساگه درختانش گسترانیده فرش بوخلمون بامدادان که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبول و زیمران فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده. گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد. و حکما گفتند هرچه نپاید دل را نشاید. گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزحت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را به تیش خریف مبدل نکند. به چه کار آید ز گل تبقی؟ از گلستان من ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد. وین گلستان همیشه خوش باشد. گل همین پنج روز و شش باشد. وین گلستان همیشه خش باشد. حالی که من این حکایت بکردم، دامن گل بریخت و در دامن آویخت که الکریم و اضا وعد وفا فصلی در همان روز اتفاق بیاز افتاد در حسن معاشرت و آداب محاورت در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاقت بیفزاید. جمله هنوز از گل بستان بقیتی منده بود که کتاب گلستان تمام شد. و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه، سایه کردگار و زخر زمان و کهف امان المؤید من السما المنصور الأعداء، ازد الدولت القاهرة سراج الملت الباهرة جمال الانام مفخر الاسلام سعد ابن ال عطا وكل اعظم شاهنشاه المعظم مالک رقاب الامم مولا ملوك العرب والعجم سلطان البر والبهر، وارث ملك سليمان مزفر الدين عبی بکر ابن سعد ابن زنگی، ادام الله اقبالهما، و زا لهما، و زا لهما، و جعل الى کل خیر معالهما، و به کرشمه لطف خداوندی مطالعه فرماید، گر التفات خداوندیش بیاراید نگار چینی و نقش ارتنگی امید هست که روگ ملال در نکشد از این سخن که گلستان نجای دلتنگی است. علال خصوص، که دیباچه همایونش به نام سعد عبو بکر سعد بنزنگی است. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر و دیده یعص از پشت پای خجالت بر ندارد و در زمره صاحب دران، متجلی نشود مگر آنگه که متحلی گردد به زیور قبول امیر کبیر عالم عادل، معید مزفر منصور زهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت کهف الفقراء ملاذ الغربا مربي الفزلا، مهب العتقيا افتخار آل فارس يمين الملك ملك الخواص عطا فخر دولت و دين ياس الاسلام والمسلمين امدت الملوک و سلاطین، ابو بکر بن عبی نصر، اطال الله و و اجل قدره و شر حسدره و زعف قجره، و که ممدوه اکابر آفاق است و مجموع مکارم اخلاق. هر که در سایه انایت اوست گناهش طاعت است و دشمن دوست بر هر یک از سایر بندگان و هباشی خدمتی متعین است که اگر در ادای برخی از آن تهابون و تکاسل روا دارند، در معرض خطاب آیند و در محل اتاب، مگر بر این طایفه دربیشان که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولاتر است که در حضور آن به تسنق نزدیک است و این از تکلف دور و به اجابت مقرون باد پشت دوتای فلک راست شد از خرمی تا چوتو فرزند زاد مادر ایام را حکمت مهز است اگر لطف جهان آفرین خاص کند بنده ای مصلحت آم را دولت جاوید یافت هر که زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل، حاجت مشاته نیست روگ دراران را. تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می رود، بنابر آن است که طایفه ای از حکمای هندوستان، در فضایل بزرگ مهر سخن میگفتند. به آخر جز این ایبش ندانستند که در سخن گفتن بتی است. یعنی درنگ بسیار میکند و مستمع را بسی منتظر باید بودن تا تغریر سخنی کند. بزرگ مهر بشنید و گفت، اندیشه کردن که چه گوگم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. سخندان پرورده پیر کوهن، بی اندیش بگوید سخن، مزن تا توانی به گفتار دم. مزن بی تأمل به گفتار دم نکو گوی گردیر گویی چرقم بیندیشو آنگه براور نفس وزن پیش بس کن که گویند بس به نت بهتر است از دبا دواب از تو به گر نگویی سباب فکیفه در نظر اعیان حضرت خداوندی از زن نصرهو که مجمع اهل درست و مرکز علمای متبهر اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم و بزاعت مزجاد به حضرت عزیز آورده. و شبه در جوهریان جوی نیرزد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد و مناره بلند بر دامن کوه البند پست نماید. هر که گردن به دعوی افرازد، قیشتن را به گردن اندازد، سعدی افتاده است، آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده، اولاندیشه اندیشه بانگهی گفتار، پای بست است و پس دیوار. نخلبندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی فروشم ولی نه در كنعان لغمان را گفتند حکمت از که آموختی گفت از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند قدم خروج قبل الولوج مردیت بیازمای وانگه زن کن گرچه شاطر بود خروس به جنگ چه زند پیش باز روگین چنگ گربه شیگ است در گرفتن موش لیک موش است در مساف پلنگ. اما به اعتماد سعت اخلاق بزرگان که چشم از اوایه به زیر دستان بپوشند و در افشای جرایم کهتران نکوشند، کلمه چند به طریق اختصار، از نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیر ملوک مازی رحمه همالله در این کتاب درج کردیم و برخی از عمر گران مایه برو خرج. موجب تصنیم گلستان این بود و بالله توفیق. بماند سالها این نظم و ترتیب ز ما هر خاک افتاده جایی قر از است که از ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقایی مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در کار درویشان دعایی امان نظر در ترتیب کتاب و تهذیب ابواب ایجاز سخن را مسلحت دید تا بر این روزی قناق و حدیقه قلبا چون بهشت هشت باب اتفاق افتاد از آن مختصر آمد تا به ملال ننجامد باب اول در سیرت پادشاهان باب دوم در اخلاق درویشان باب سوم در فضیلت قناعت باب چهارم در فواید خاموشی باب پنجم در عشق و جوانی باب ششم در ضعف و پیری باب هفتم در تأثیر تربیت و باب هشتم در آداب صحبت در این مدت که ما را وقت خوش بود زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود. مراد ما نصیحت بود و گفتیم. حوالت با خدا کردیم و رفتیم.